آن شب هم گذشت و فکر می کنم هفته بعدش بود که توی کوه سریا یکی از دوستهای دانشگاهیش به نام سیمین و نامزدش را که پسری به اسم محمود بود همراه آورده بود و بعدا گفت که برای اینکه جمع ما و ارتباطهای دوستانه بتواند در حل اختلافاتشان که ما بعدها فهمیدیم چیست کمکشان کند از آنها دعوت کرده ولی همونطور که اختلافات آنها حل شد، اختلافات من و محمد هم ریشه میشد. میشد. سیمین سعی داشت نامزدش را که پسری کم حرف و کمرو و تا حدی میشود گفت عصبی بود و کاملا واضح بود که از بودن در جمع رنج میبرد، تغییر دهد خودش درست برخلاف نامزدش دختری سر و زباندار و پرشور و شر بود و درک نمی کردم چه چیزی باعث کشش و علاقه آنها به همدیگر شده بود. ولی به هر حال معلوم بود که محمود با ضرب و زور سیمین می آید و در تمام مدت با همه ی امیر و جواد و محمد شاید بیشتر از ده پانزده کلمه حرف نمی زد. دو هفته با اوقات تلخی آمد و برخلاف سیمین که مدام از همیشگی شدن برنامه ی حرف می زد هیچ نمی گفت بعد از آن چندبار هم دیگر همراه ما به کوه نیامدند روزی را که یا نظر محمد را در مورد محمود پرسید خوب به یاد دارم آن روز اگر گوشی شنوا و چشمی بینا بود خیلی چیزها میشد فهمید و نتیجه گرفت ولی دریغ که هیچ کدامش نبود محمد در جواب ساریا گفت هرچی فکر می کنم بگم سرعیه متعجب گفت خب معلومه آره ببین در مورد اینا اصلا بحث بر سر خوب یا بد بودن هیچ کدومشون نیست ما بنا رو بر این می که هر دوی اینا بچه خوبی هستن ولی دوتا خوبی که به درد هم نمیخورن. اگه این دوست تو اصرار داره این وصلت انجام بشه باید صابون خیلی چیزا رو هم به دلش بزنه از جمله سختی و مرارت های چند ساله و شاید همیشگی و آخر سرم با این خلق و خویی که من از پسر دیدم فکر نمی کنم چندان موفق بشه. حقیقتش فکر می تا اینجا هم تحمل پسره فقط به خاطر رو که با هم دارم بوده و احتمالا اونم مثل سیمین تو این فکره که بعد از عروسی اخلاقه زنش رو عوض کنه. خلاصه به احتمال زیاده که ازدواجشون سر بگیره مشکلاتشون بیشتر میشه که کمتر نمیشه. ببین این دوست شما میخواد به خودش و دیگران بقبولونه که محمود عوض میشه و طوری میشه که اون میخواد منتهی اشتباه میکنه چون اون آقایی که من دیدم آدمی نیست که به آسونی عوض بشه برای اینکه در حقیقت اصلا نمیخواد عوض بشه تغییر مال وقتیه که آدم از اونی که هست در رنج باشه و خودش بخواد که تغییری انجام بشه تو خودت دیدی هر وقت دوستت از بعدها صحبت میکنه نامزدش چه جوری نگاهش میکنه به نظر من اگه میخوای به دوستت کمک کنی بهتره رو راست، اون چرا میبینی و میفهمی بهش بگی؟ چرا بهش نمیگی که با تصورات خودش نمیتونه را عوض کنه؟ تازه اگه خود طرفم ازش خواسته بود برای عوض شدن کمکش کنه، بازم تغییر شخصیت آدمو کار آسانی نیست. چه برسه به اینکه خودت میگی سراحتم به سیمین گفته که فکر و کاراشو قبول نداره؟ آخه با فکر و خیال خوشبینی که نمیشه آسمون و زمینو به هم دوخت. سیمین یه دختر پرحرف، اجتماعی، پر جنب و جوش و خوش اخلاقه درست برخلاف نامزدش. توی این مدت هر بار سیمین توی صحبت خودش و کرد به نگاه های محمود دقت کردی؟ نمیگم تحسین یا تعیید میکرد، لااقل بی تفاوت هم نبود. معلوم بود به زور تحمل میکنه که چیزی بهش نگه. درزم هیچ وقت حرف مادرت رو یادت نره. سریا کاف پرسید. کدوم حرف؟ مگه مامانت همیشه نمیگن ماره بد بهتره از یاره بد؟ به هر حال اگه خودت هم نمیخوای از قول من بهش بگو. دوتا آدم که با هم ناموافق باشن زندگی رو به خودشون و اطرافیانشون و احیانن بچهی که بعدها به وجود میاد تلخ میکنن و بگو شکی که کرده درسته. سریا با تردید پرسید کدوم شک؟ اگه شک نداشت که درستی و نادرستی کارش رو از دیگران نمی پرسید مگه سوالوی تو به خاطر مشورتی که خودش باهات کرده نیست؟ سرعیه خندان و با نگاهی قرق تحسین مانده بود چه بگوید که امیر گفت بابا دادگاه حمایت خانواده رو تعطیل کنین ببینین جواد چی میگه همان روز بود که جواد پیشنهاد کرد همه با هم به جلسه یه تفسیر شعری برویم که می گفت با معرفی دوستانش رفته است و سه شنبه ها بعد از ظهر تشکیل می شود جواد با شوق و ذوق تعریف می کرد اسمش تفسیر شعره ولی یه موقع می بینی استاد در مورد یه بیت شعر اونقدر حرف و مثالای جالب از ارفان و معرفت و ادبیاتو و همه چیز و همه جا که ماتت می بره. همه با میل و رقمت قبول کردند. جز من. چون سه شنبه تنها روزی بود که محمد بعد از ظهرها وقت آزاد داشت. ولی محمد فوری گفت چه روز خوبی هم هست؟ من و مهناز هم میای؟ از آن روز به بعد علاوه بر جمعه ها عذاب سه شنبه ها هم بر عذاهای من اضافه شد. با یکی دو جلسه رفتن برخلاف انتظارم غیر از من همه مشتاق و طرفدار پروپا قرص آن جلسه ها شدند و یک موضوع جدید هم برای بحث های جمعه ها پیدا کردند ولی من انگار پای دار میرفتم. به نظرم مسخره بود که برای یک بیت شعر و هاشیه های مربوط به آن یک ساعت و نیم آدم مچاله یک جا بنشیند حرفهایی که همه با دقت گوش میکردند، برای من حرفهایی بی سر و ته بود که حوصله ام را سر می برد و حالم را به هم میزد به زحمت و زور و زجر فقط سه بار رفتم فکر می کردم اگر نروم محمد هم نمیرود ولی اینطور نشد دلم میخواست او بودن با من را به شنیدن آن به نظر من مزخرفات ترجیح بدهد ولی اینطور هم نشد تنها با دلخوری سعی کرد رازیم کند و آخر سر گفت به هر حال من میرم میل خودته. خب معلوم بود که علاوه بر جمعه ها اخم و تخم های سه شنبه ها هم اضافه شد. چون باز تیرم به سنگ خورده بود. محمد بودن با آنها را ترجیح داده بود و این برای من زچری غیر قابل تحمل بود. شوند روزها نمیدانستم که همه ارزش عشق به دوام و بقا و پایداری آن در تمام فراز و رقابتها و همراهی با جام‌هاست کسی که معشوقش را محدود و در بند و اسیر می‌خواهد طلای را در اختیار دارد که در عیارش شک دارد محک عشق همان دوام و بقای آن در تماس با تمام هستی و جریان زندگی است ولی آن روزها من دوام عشقم را مستلزم محدودیت میدانستم مستلزم ندیدن نشنیدن نرفتن و ندانستن محمد از هر آنچه تازگی بود از شنیدن و دیدن فراری و بیزار بودم و حالا میفهمم که ناخداگاه در استحقاق خودم شک داشتم نمیدانستم همه آدمهایی که از تحول و تازگی و حرفهای جدید و دنیاهای تازه می‌ترسند، به نوعی از برملا شدن زعف های خودشان در حراسند این را هم نمیدانستم که ذهن برای اعتراف نکردن به این حقایق بحانه های جور و جور و اسمهای مختلف می‌ترشد. یا منکر ارزش چیزهای تازه می‌شود و به کل نفیشان می‌کند یا به مسخره و استهزا پناه میبرد و اسم هر چیزی را که غیر از باور خودش است بیهودگویی و حماقت میگذارد. و یا و این تمام آن کارهایی بود که من میکردم، چون سالها وقت لازم بود که بفهمم آدمی‌زاد چه معجون عجیب و غریبی است که برای اثبات حقانیت افکار خودش حاضر است همه عالم را زیر سوال ببرد، نفی و انکار کند الا خودش در نتیجه به این حقیقت مهم هم پی نبردم که آدمهای حقیر افکار پوسیده و بیارزش و اعتقادات موهوم و بیپایه و اساس همیشه از مواجهه و مقایسه و مباحث فراری و آسیند و این خود دلیل مهم و محکم بیارزش بودن آنهاست منتها افسوس و صد افسوس که این چیزها را وقتی فهمیدم که تنها بر رنج و اندوه و ندامتم اضافه میکرد و بس. کم کم با اینکه از شدت علاقه و کششم به محمد حتی ذره‌ای کاسته نشده بود ولی رابطه من زمین تا آسمان با گذاشته فرق کرده بود. میشد گفت تنها توجه صد درصد محمد به درسهایم مثل سابق بود. ولی فاصله ما مدام بیشتر و بیشتر میشد. در این میان فقط به نزدیک شدن تاریخ عروسی امیدوار بودم. با آنکه تصمیم مصریه محمد برای رفتن در دلم وحشتی گنگ ایجاد میکرد، اما امیدوار بودم که در فاصله عروسی و آماده شدن کارهایمان برای رفتن، شاید بتوانم منصرفش کنم. بیشترین چیزی که آن روزها فکرم را رو مشغول می کرد، وجود یا و جواد و کوه و رفتن رفتنهای آنها بود و تکاپو برای کم کردن شر آنها از سر زندگیم. وقت‌هایی که دلم خیلی می گرفت، آرزو می کردم خانم جون بود و به اتاقش پناه می بردم و از او راه نمای می خواستم. یاد خانم جون اشکم را جاری می کرد و دلم را بی چقدر دلم برای آن وجود سرشار از مهر و و در عین حال عاقل و ناصح تنگ شده بود. جای خالیش هنوز هم با شدت روز اول خودش را به رخ می در خیال با خانم جون درد دل می و دل سوزی و همدردی فرضی او را مجسم می و به خودم دلداری می دادم. در حالی که شاید اگر خانم جون بود، اولین مخالف صد در صد رفتارهایم بود. بعدها همیشه فکر می کردم شاید اگر خانم جون زنده بود کار من و محمد به جدایی نمی کشید. ولی خوب، این هم مثل تمام اگرهای دنیا اتفاق نیفتده بود. خواسته من از زندگی و دنیا همان بود که تا آن موقع شناخته بودم. یک محیط آشنا و معنوس و بسته و محدود. زندگی برایم آن خانه امن بود و آرامش آدم های آشنا و روالی عادی و معمولی که تا آن سن داشتم. در تصورم نهایت آرزویم خانه ای بود که با محمد تنها و خوشبخت در آن زندگی کنیم. او مثل تمام مردهایی که دیده بودم مثل پدرم و پدرش به کارهایش برسد و من به زندگیم و با خانواده هم در ارتباط باشیم. میخواستم من زن خانهی کوچک و قشنگی که در ذهنم ساخته و پرداخته بودم باشم و او مرد آن خانه در دنیای ذهن من رفت و آمد و شلوغی و تکاپو و ناشناخته ها جایی نداشتند و از اینکه دنیایم را به ظاهر از دست رفته میدیدم وحشت زده و در عذاب بودم و نمیدانستم با این افکار بسته و محدود دارم دستی دستی خودم را. جزء آن آدمهای بدبختی میکنم که به خاطر هیچ و پوچ بدبخت میشوند شاید اگر آن روزها تمام آنچه توی فکرم میگذشت راحت به محمد می گفتم، اگر به جای زورازمای و لجبازی آنچه آن چرا آزارم میداد رو راست بیان میکردم و راه مسالمت و درک و فکری را انتخاب میکردم مسیر زندگیم به کلی عوض میشد. من به اشتباه. هماقت و لجبازی و یک تندگی را با غرور ابزی میگرفتم فکر میکردم در میان گذاشتن افکارم به منزله اعتراف به نادانیم است و گفتن آنچه آزارم میدهد دهد نشان دهنده حقارتم است و بیشتر از آن میترسیدم که سریا را که تلاش و تکاپو و اعتماد به نفسش مورد تحسین دیگران بود در ذهن محمد به نوعی بزرگ کنم و خودم را کوچک و ناچیز این بود که در نهایت مثل آدم‌هایی که راه عاقلانه و منطقی را نمیشناسند باز در دوری باطل سر جای اول برمیگشتم یعنی میرفتم سراغ همان کاری که بلد بودم لجبازی و بی‌اعتنایی و تحقیر دیگران کار از آنجا مشکل‌تر شد که محمد آرام آرام بی تفاوت شد به حساسیت همیشگی را از دست داد هرچه من در رفتارم پافشاری فشاری می کردم، محمد هم بیعتناطر می شد و من به جای روشم را رو عوض کنم مدام اشتباه بود که پشت اشتباه مرتکب می شدم وقتی از من نمی خواست همراهش بروم برا شفته می شدم و وقتی می رفتم باز دردسر بود و آشفتگی و این بود که ماهای آخر تقریبا همیشه قهر بودیم یکی از آخرین جمعه هایی که به کوه رفتیم وقتی به قهوه خانه رسیدیم هیچ کدام از تختها خالی نبود در فکر بودیم که برویم یا بمانیم که کسی امیر را صدا زد پسر یکی از همکارهای پدرم ها جاقا جعفری بود که کارخانه گه بلور سازی داشت پسری حدود بیست و سه چهار ساله با قدی متوسط و هیکلی درشت و چاق با دو نفر از دوستهایش روی تختی نشسته بودند و هر طوری بود به ما هم برای نشستن جا دادند امیر با خنده پرسید محمد رزا چی شده اومدی کو؟ میخوای واسه عروسی لاغر بشی مردم نگن داماد تو پل بود؟ محمد رزا در حالی که لقمه بزرگی که لپش را به شکلی مسخره پر کرده بود هنوز توی دهانش بود گفت کدوم عروسی؟ امیر با حیرت گفت اه چی شد؟ مگه عروسی به هم خورده؟ خود حاج یکی دو هفته پیش گفتن همین روزا کارس پرامون میارن نکنه عروس عقلش رسیده و فرار کرده محمد رضا خندان گفت بیچاره عروس دنیا رو به گرده داماد مثل من پیدا نمیکنه. عقلش وقتی رسید که قبول کرد زن من بشه حرف عروس نیست که از دست این پدر حرفش را خورد و با عصبانیت نانی را که پرداشته بود دوباره گذاشت توی سینی و در جواب سؤال دوباره امیر توضیح داد که عروسی مدتی عقب افتاده چون به تحریک یکی دو نفر از کارگرها بقیه کارگرها ادعای حق بیمه کردند که با احتساب سالهای کار مبلغ قابل توجهی میشد. بعد با لحنی پر از تحقیر و کینه گفت و یادته؟ امیر گفت دربونه کارخونه دیگه آه وری چارل مرتی که موش تو کارخونه ی ما سفید شده حالا پسر بی همه چیزش سر بلند کرده دو تا لنگه خودشو هم راه انداخته که باید ماها رو بیمه کنی وگرنه شکایت میکنی. به سر پر رو پر که بابام رو هم بیمه کنی. حق بیمه این چند سالو هم بدین تازه، آقا وام عروسی هم میخواد بگو مردی که تو یه عمر زیر سایه بابای من بودی سقف بالای سرتونو طولایی که بابت پشت سر هم پس انداخته توی همین کارخونه ما بوده حالا باید توی روی بابای من وایسی بری چارتا از خودت بدتر رو هم بکنی واسه ما شاخ دیروز جون امیر کم مونده بود بزنم لهش کنم به خودشونم گفتم از شما بابا دربون ننه رخشور بهتر از این طوله درست نمیشه. با این حرفش انگار نفس امیر بند آمد و رنگش مثل گچ سفید شد. در حالی که محمد و جواد مثل لب و قرمز شدند. ولی من خوب به یاد دارم. در کمال شرمندگی یک لحظه چه لذت حیوانی از این حرف بردم. چون فکر کردم سریا خورد شد. که تا همین چند لحظه پیش داشت با محمد در مورد قنای ادبیات کلاسیک بحث می کرد و داد سخن می داد و از آن حرف های قلم به سلوم بمی زد که لجه مرادر می آورد. شاید تمام این حالات سی ثانیه هم طول نکشید که برخلاف انتظار منو شاید همه سریا با آرامش سر بلند کرد و پرسید حالا صرف نظر از مادر و پدرشون این درخواست حق یا ناحق محمد رضا من نومن کنان گفت: « وله خب آره؟ ولی سورایا در حالی که نگاهش سرشار از تحقیر بود همانطور که از جا بلند میشد گفت: پس شما بهتره به جای اینکه پای اصل و نسب و شجر نامشون رو پیش بکشین. براشون روشن کنین که حق و ناحق بودن حرفشون و اینکه چند سال اونجا استخون خورد کردن و جون کندن مهم نیست. مهمینه که تا موقعی جاشون اونجاست که مثل سگ اهلی گوش به فرمان باشن تا شما هر وقت دلتون خواست و البته اگه دلتون خواست استخونهایی رو که دلتون نمیاد دور بریزین جلوی اونا پرت کنین. چون بالاخره سیر کردن شکمایی با حالتی مسخره به شکم او اشاره کرد. مثل اینا همچینام آسون نیست. این را گفت و بدون اینکه به بقیه نگاه کند، پشت به ما کرد و راه افتاد. توی آنجام شاید بعد از محمد رضا دهان من از همه بیشتر باز مانده بود و حیرت زده و گیج به بودم. خون سردی و آرامش سرییا در موقع صحبت و از جا بلند شدن و دور شدن بدون اجل اش با آن تسلط همه و از همه بیشتر من و محمد رزا را مثل سائق زده ها خوش کرده بود وقتی به خودم آمدم که یادم نیست چجوری خداحافظی کرده بودیم یا اصلا خداحافظی کرده بودیم یا نه ولی بیرون از قهف خانه به دنبال سریا و همراه محمد کشان کشان میرفتم دوباره ورق عوض شده بود. سرعیا سر بلند و پیروز بود و بار دیگر نگاه های محمد و امیر غرق حیرت و تحسین و احترام بود. و دل من مالا ماله، هرس و خشم و بیزاری. هنوز رفتار قبلیش درست توی ذهنم جا نیفتاده بود که سریا مثل اینکه تازه خشم برف کرده بود برگشت و رو به امیر گفت حالا متوجه شد این برای چی با پسرها سر جنگ دارم. حالا قبول کردین که لاش خورایی مثل این که فکر میکنن دنیا و آدما رو محض آسایش خاطرشون ساختن چون پول دارن باعث بیزارین؟ من از این است که نفرت دارم. از پدرایی که همچین پسر رو یه تربیت میکنن تا بتونن سمرهی کلاه کلاه کردن وی اونا رو بهتر از خود پس فطرتشون حفظ کنن فکر می کنی چرا اینقدر به خودش حق میده؟ خیلی آدمه؟ خیلی فهمیده است؟ یا زحمت کشو با تجربه اون مرد عمل؟ اون هیچی نیست غیر از یک بات کنه که گنده بی خاصیت که با پول باباش بات شده و اون وقت به پشتواره همون پولهایی که ثمره جون کندن یه است اونقدر در خودش وجود میبینه که در مورد یه پیرمرد چون زیر دست بابای جواد با لحنی ناراحت که در عین حال دعوت به سکوت و آرامش داشت حرفش را قطع کرد و گفت: پس دیگه سورایا، حرف رو یکی دیگه زده تو چرا دعواشو داری با امیر میکنی؟ سورایا همان طور بر افروخته گفت: دعوا نکردم. دارم جواب اینو میدم که میگه پسرها چه جنایتی مرتکب شدن. همین دوباره رو گرداند و دور شد. محمد به جواد که سعی داشت به جای سریا از امیر معذرت خواهی کند گفت میشه تو اول بگی اصلا از چی ناراحتی سریا حرف بدی که هیچ خیلی هم کار خوبی کرد بالاخره که باید به آدم چیزایی رو که نمیفهمه بگه سریا هم به اون گفت خدا رو چه دیدی شاید مغزش تکون خورد با حرف امیر که مثل همیشه به شوخی و خندان گفت اوس جواد نکنه از اینکه جیگر از ماها بیشتر حالت گرفته است. ها؟ هر سه به خنده زدند. غیر از من. جواد داشت به امیر که همیشه به او و محمد اوستا میگفت گفت اعتراض می کرد. امیر همیشه به جواد و محمد که در رشته الکترونیک درس می خاندند می گفت. آلا خدا وکیلی کاریم شد رشته؟ گیریم که حالا لیساس هم گرفتیم. اون وقت تازه میشین جواد برخگار و محمد برخگار و بعد هم اگه خودتونو رو بکشین و بشین فوق لیسانس تازه میشین اوستا جواد و استا محمد. رشته یعنی رشته ی من. حساب داری. آنها سرگرم بحث و شوخی سر این موضوع بودند و من از شما چه پنهان قرق حسادت نسبت به سریا. هرش میخوردم از اینکه چرا هر کاری می‌کرد به چشم دیگران و محمد این قدر پسندیده و درست بود و لجم در میآمد از اینکه او به چیزهایی فکر می‌کرد و در موردش اظهار نظر می‌کرد که من هیچ به آنها توجه نداشتم و از بخت بد بیشتر آن چیزها و حرفها و کارها در نهایت با افکار محمد جور در میآمد و تحسین او را به دنبال داشت سرعیه غرق در فکر جلوتر از همه می رفت و من با فکری مقشوش همراه محمد و بقیه که می گفتند و می خندیدند پیش می رفتم که سرعیه رویش را برگرداند و پرسید بریم پایین نزدیک که چشمه بشینیم؟ سمت راست ما راهی باریک و سراشیبی بود که کنار چشمه با صفا می رسید. صرف نظر از راه سخت پایین رفتن جای خیلی قشنگ و دنج و آرامی بود. همه قبول کردند سریا جلوتر از همه رفت به دنبالش جواد و بعد من. محمد گفت سب کن اول من برم دست تو بده به من میخوری زمین من که هنوز هم اعصابم از فکرهای چند دقیقه پیش خورد بود و هم به این دلیل که سورایا خودش تنها و جلوتر از همه میرفت و نمیخواستم کمتر از او باشم با لج گفتم خودم میتونم برم و سرازیر شدم. ولی از پیچ اول یک دفعه شی راه تند شد و قدم های من هم تند. نتوانستم خود را کنترل کنم. انگار اختیار پاهایم دست خودم نبود و کسی از پشت سر هلم میداد. به سمت پایین کشیده می شدم و سرعتم بیشتر و بیشتر میشد و نمیدانستم باید چه کار کنم. وحشت زده بودم و وقتی در یک لحظه احساس کردم اگر نخواهم به جواد برخورد کنم از راه به پایین پرت می شوم بی اختیار فریادی از وحشت کشیدم جواد که با جیغ من و فریاد محمد به موقع به عقب برگشته بود در حالی که بروی نگه داشتن من خودش هم زمین خورد توانست نگه هم دارد البته چنان محکم زمین خوردم که کف دستهایم از فرو رفتن هایی که با شدت توی دستم فرو رفت از خون شد ولی فریاد خشمگین محمد که تا آن روز هیچ وقت جلوی دیگران و مخصوصا سرعیا و جواد با من آنطور رفتار و پرخاش نکرده بود بیش از درد و ترس حالم را خراب کرد و باعث خجالتم شد حس می کردم نمی توانم جلوی را بگیرم و بغز گلویم را به سختی می فشرد سرم را به دراوردن سنگ هایی که کف دستهایم فرو رفته بود گرم کردم تا اشکم سرا زیر نشود دلم میخواست بر سر سریا که سعی داشت کمکم کند فریاد بزنم که محمد دولا شد و دستم را گرفت نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و با خشم دستم را از دستش بیرون کشیدم و از جا بلند شدم بدون اینکه سرم را بلند کنم کنارش زدم و خواستم از کنار امیر و جواد بگذرم که ایستاده بودند و ما را تماشا می کردند. امیر بدون حرف بازویم را گرفت و توی پایین رفتن کمکم کرد. سکوت سنگینی که برقرار شده بود نشان می داد همه ناراحتند و این بار حتی امیر هم دیگر حسلی شوخی نداشت. این اولین بگو و مگو در درگیری واضح ما جلوی دیگران بود. امیر سرسنگینی ما را دیده بود ولی پرخاش هیچ کدام را آن هم جلوی دیگران نه. معلوم بود که او هم خیلی ناراحت است. در بقیه راه دیگر کلمه حرف از دهن من در نیومد. هرچه امیر و جواد و سریا سعی کردند جو را به حالت عادی برگردانند من که غرورم سخت جریه دار شده بود فقط ساکت و سامت نگاه می کردم و سعی می کردم دیگر حتی نگاه هم هم به محمد نیفتد البته نگفته نماند که او هم هیچ سعی و تلاشی برای حرف زدن با من نکرد توی مسیر برگشت امیر کنارم آمد و سعی کرد با من حرف بزند نتوانستم جواب بدهم یا حرفی بزنم بقصه سنگینی از قصه و خشم روی سینه سنگینی می کرد. جلوی یا احساس هقارت می کردم و نمی توانستم محمد را ببخشم. وقتی به خانه رسیدیم سرم از درد داشت می ترکید و معده از سوزش بیچاره کرده بود. ولی با این حال بدون اینکه غذا بخورم پایین توی اتاق مادرم خابیدم. دلم نمی خواست با محمد تنها باشم. وقتی بیدار شدم نبود. مادر گفت که رفته خانه خودشون. من آنقدر از دستش ناراحت بودم که برای اولین بار فکر کردم کاش شب برنگردد ولی برگشت. بعد از شام و تقریبا دیر وقت همان شب بود که برای اولین بار مادر با من صحبت کرد و از فراز و های زندگی گفت و اینکه بگو مگو بین همه هست. منتها. آدم نباید گره را با دست خودش کور کند و زن باید آرام و باگذشت باشد و غیره مادر بی آنکه چیزی گفته باشم صحبت میکرد، و من که فهمیده بودم امیر قضیه را برای مادر گفته انگار پیش مادر هم خجالت میکشیدم و از امیر لجن میگرفت. مادر سعی داشت با کوچک کردن قضیه مرا آرام کند در صورتی که درست برعکس توی ذهن من موضوع بزرگتر میشد و خودم را در چشم آدم های بیشتری حقیر میدیدم مادر میگفت قدر این چند روز رو بدونین دیگه چیزی نمونده برین سر زندگیتون اون وقت دلتون به حال این روزا میسوزه بیچاره نه مادر خبر داشت نه من که این چند روز باقی مانده پایان روزگار نامزدی نیست بلکه پایان همه چیز لاقل برای من است. به هر حال خشم من فروکش نکرد و آن شب برای دومین بار بود که جایم را موقع خواب جدا کردم و این دفعه دیگر او نه حرفی زد و نه اکسال عملی نشان داد. نمیدانم خسته شده بود یا او همراه لجبازی را پیش گرفته بود. هرچه بود رفتارش اوزارا وخیم در کرد. در همان اوزا و احوال آخرین امتحالات و کنکور را دادم و سالگرد خانم جون رسید و محترم خانم خوشحال گفت که بعد از سالگرد باید هرچه زودتر به فکر عروسی باشیم. در همین گیرودار دار کار ویزای محمد برای رفتن به آلمان هم درست شد. آن روزها به نظرم می آمد هرچه من برای عروسی مشتاقم محمد عجله ندارد و این باز بر سردی رابطه ما. و لچ بازی من اضافه می کرد.